فصل 21 م به این مردک باید حسابی توهین میکردم باید از او می پرسیدم که آیا با زن خودش به زور می خوابد و اینکه موفق شده بازی اسکات را با دو امتیاز اختلاف ببرد و اینکه امروز یاوهگوی اجباری دو ساعتش درباره جنگ را با همکاران ادارش پشت سرگذاشته است یا نه؟ صدایش صدای یک شوهر واقعی و یک آلمانی حلال زاده بود و چه عجب گفتنش معنی گوشی را بگذار داشت. صدای زابین امونز برایم آرامش بخش بود گرچه صدایش کمی عصبی و عجول بود ولی میدانستم که رفتار ماری را واقعاً بدجنسی می‌داند و دیگ سوپ من واقعاً روی اجاق خانه اوست او آشپز خوبی بود و اگر دائم آبستن نبود و مدام نگاه هاکی از امان از دست شما مردها را به اطراف نمیانداخت، خیلی سرزنده و شاداب میشد. کاتولیک بودنش هم دلپذیرتر از شوهرش بود مردی که در مورد مسائل جنسی همچنان به عقاید عجیب و غریب دوران مدرسه معتقد بود نگاه خشمگین زابینه شامل تمام مردان میشد ولی وقتی این نگاه به کارل کسی که او را کرده بود میافتاد رنگ تیره به خود میگرفت رنگی که تقریبا به رنگ رگبار شباهت داشت من اغلب سعی میکردم با اجرای یکی از برنامه هایم فکر زابینه را منحرف کنم آن وقت مجبور میشد بخندد طولانی و سمیم قرب تا اینکه اشکش سر سرازیر زیر و آن وقت گریه غلبه می کرد و دیگر اثری از خنده نبود و ماری مجبور می او را بیرون ببرد و دلداری بدهد. در حالی که کارل با غیافهی در هم که نشان میداد به گناهش آگاه است کنار من نشسته بود و عاقبت از شدت ناراحتی و ناامیدی مشق بچه ها را تصیح می کرد. گاهی هم من در تصیه تکالیف بچه ها به او کمک می کردم. به این ترتیب که زیر غلط با جوهر قرمز ختم می کشیدم ولی او به من اعتماد نمی کرد و دوباره آنها را چک می کرد و همیشه از اینکه چیزی از قلم نیفتاده بود عصبانی می شد. برای او تصور این که من می توانم چنین کاری را درست و همانطور که مد نظر اوست انجامده هم سخت بود، تنها مسئله کار مشکل پول است. اگر کارل ایمونز یک آپارتمان هفت اتاق داشت، خیلی از این هیجانات و آشفتگی های خانوادگی پیش نمیامد. یک بار با کینکل درباره کمترین حد مخارج زندگی جر و بحثمان شد. کینکل را به عنوان یکی از متخصصین نابغه این جور مسائل میشناسند. گمان می کنم تخمین زد که فردی مجرد در شهری بزرگ بدون کرایه خانه دست کم به هشتاد و مارک احتیاج دارد بعدا این رقم را به هشتاد و مارک تصیح کرد نمی بگویم که خودش برای گذران زندگی سی و پنج برابر رقم تهو آوری که تخمین زده نیاز دارد چون این قبیل حرفها بیش از حد شخصی است و بیصلیقهگی گوینده را نشان میدهد ولی در واقع بیصلیقهگی این بود که او به خودش اجازه میداد کمترین حد مخارج زندگی دیگران را حساب کند در این هشتاد و شش مارک مبلغی هم برای احتیاجات فرهنگی در نظر گرفته بود شاید سینما یا روزنامه وقتی از کینکل پرسیدم که آیا آنها انتظار دارند که شخص مورد نظر با این پول به تماشای یک فیلم آموزشی تربیتی برود، خشمگین شد و وقتی پرسیدم منظورش از در نظر گرفتن مبلغی برای تجدید موجودی لباس زیر چیست و آیا آنها از طرف وزارتخانه پیرمرد خوشنیتی را مأمور می کنند که شهر بن را زیر پا بگذارد و به وزارتخانه گزارش بدهد که در چه مدت زیر شلواریش باره شده است، زنش گفت که من به طرز خطرناکی فکر میکن به او گفتم وقتی کمونیست شروع کردند مدل های وعده غذا درست کنند و مدت زمان پاره شدن دستمال را تعین کردند و از این مزخرفات برایم قابل فهم بود زیرا هرچه باشد کمونیستها برای توجیه کارشان به دنبال توجیهات ماورا و نبودند ولی مسیحی یانیمانند شما برای رسیدن به هدفشان از هیچ کار مزورانه و غیرقابل باوری چشم پوشی نمی کنند اینجا بود همسرش گفت بدون شک تو ماتریالیست هستی و توان درک مسائلی چون فداکاری، درد، سرنوشت و عظمت فقر را نداری در مورد کارل امونز هیچ اثری از فداکاری، درد، سرنوشت و عظمت فقر ندیده بودم کارل درآمدش خوب بود و آنچه که از سرنوشت و عظمت فقر در زندگیش به چشم می‌خورد، عصبیت، آشفتگی و خشم بود چون میتوانست حساب کند که هرگز نخواهد توانست اجاره ی آپارتمانی را بپردازد که مناسب وضعش باشد. وقتی برایم روشن شد که از بخت بد کارل امونز تنها کسی است که میتوانم از او پول بخواهم، تازه به بدی موقعیتی که در آن بودم پی بردم. من حتی یک فنینگ هم نداشتم.